اگر رفیق شفیقی درست پیمان با حریف خانه و گرماوه و گلستان با، شکنجه زلف پریشان به دست باد مده مگو که خاطر و شاو کو پریشان باد. گرت هواس که با خضر هم نشین باشی نهانز ز چشم سکندر چوب حیوان با زبور عشق نوازی نکار هر مرغی است بیا و نو گوی این بلبل غزل خان با طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان با دگر به سید هرم تیغ بر مکش زنها وزان که با دل ما کرده ای پشیمان باش تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش کمال دلبری و قوز در نظربازی است به شیوه نظر از نادران دوران با خموش حافظ و از جور یار ناله مکنن تو را که گفت که در روی خوب ایران بود